Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا اللہ شهادت می دهم بر این که یک ای یا اللہ بجز تو نیست خدایه و تو تنهایی یا اللہ بی دادی جمل را هستی ربی من یا الله تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا یک اللہ همه عالم گواه هست بر وجود زافت یکتایی تو تنهایی و تنهایی wa tanhayi ya allah shahadat mai deham bar in ki yakta yi allah بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله شهادت میدهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله توانائی علم تو همه چیز را فراگیرت توانائی ودانی ودانی یا الله محمد را فرشت دی برای دعوتی اسلام تو دی جمل موی وو و, و موی یا الله شهادت می دهم بر این که یکتا یا الله با جز تو نیست خدا یبو تو تنها یا الله الله یا الله الله Allah ya Allah, rizayi tu bowad baran, ki az vai pa irabid tu mahbubi, wa mahbubi, wa mahbubi, ya Allah. Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya, Allah. Allah, Allah, ya سمانی و زمینی کی رودگاری من تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله الله الله یا الله. الله الله الله یا الله هزاران این سپاس و شکر ما مبادان ساری تو تومع بودي ومقصودي ومقصودي الله الله الله الله الله الله الله